حصل چهار بهداشت حافظه بخش اول جریان خون در مغز در کتاب دیگری به نام بیودینامیک مغز نوشتم مغز مانند هر عضو فعال دیگر در هنگام فعالیت مقدار خون بیشتری دریافت می کند این مسئله را می در افرادی که مغزشان بر اثر تصادف اوریان و آشکار شده است مشاهده کرد. با قرار دادن یک دستگاه ثبت کننده روی مناطقی از مغز که توسط جمجمه پوشیده نشده می توان مشاهده کرد که جریان خون در هنگام کار فکری یا تحت تاثیر یک حیجان تشدید می شود. همچنین می دید که فعالیت مغز رابطه بسیار نزدیکی با جریان خون جمجمه ای دارد. این آزمایش با دراست کردن شخص روی نوعی بالانس انجام می گیرد. این بالانس از یک میز که روی یک برجستگی میانی به صورت متعادل قرار گرفته و یک وزنه سنگین که قادر است به مقدار کافی مرکز سقل سیستم را پایین بیاورد تشکیل شده است. اگر در این حالت از شخص سؤالی کنیم، دستگاه سریعا به طرف سرخم می شود که نشاندهنده شدت یافتن جریان خون به سمت مغز است. ماده خاکستری مغز حدود 1100 میلیمتر مویرک در هر میلیمتر مکعب از بافت خود دارد. بافت افراد متفکر حتی دارای بیش از این مقدار عروغ است. در هر میلیمتر مکعب از ماده سفید مغز 300 میلیمتر مویرک و در هر میلیمتر مکعب ازوله 6 میلیمتر مویرک وجود دارد. بنابراین مغز عضوی است که بیشترین مقدار خون در آن جریان دارد. این نظریه با استفاده از مواد رادیواکتیو نظیر کریپتون 85 که گاز رادیواکتیو خنثا و انتشاردهنده دهنده بتاست و یا اگزنون 133 که امواج گاما از خود متصاعد می‌سازد و قادر است از جمجمه عبور کند و از طریق مجاری بیرونی قابل تشخیص میباشد به اثبات رسیده است. گاز اگزنون 133 را در یکی از سرخ‌رگ‌های داخلی ثبات که یک کره مغز را تغذیه می کند، تزریق نموده و شعاع رادیو آن را با کمک یک دستگاه یابنده تشعشو که روی سر شخص در قسمت کاروتین داخلی قرار میگیرد دنبال می کند. دستگاه به ترتیب منطقه خاصی از مغز را جستجو کرده و مورد بررسی قرار می دهد و مقدار خونی را که به این بخش می به وسیله کامپیوتر محاسبه می کند. با انجام این آزمایش مشخص شده است که مغز در حال بیداری از هفتاد و پنج تا یک و لیتر خون در دقیقه دریافت می و سرعت جریان خون در ماده خاکستری چهار بار سریتر از قسمت سفید آن است. این مقدار جریان خون همچنین نشان داده که به نسبت جریان خون کلی جریان خون مغزی بسیار ثابت است. بنابراین مغز دارای سیستم تنظیم کننده است که آن را در مقابل تغییرات جریان عمومی خون حفاظت می کند. از سوی دیگر، هنگامی که منطقی خاصی از مغز فعال می شود، این جریان خون به صورت موضعی افزایش می این افزایش را می‌توان هنگامی که سیستمی شبیه به اسکانر مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مشاهده کرد. این روش اجازه می دهد که پس از آنکه شخص ماده رادیواکتیوی را تنفس کرد، روی صفحه تلویزیون رنگی جریان خون مغزی وی را مشاهده کنیم. بدین ترتیب، یک حرکت ساده دست با مناطق قرمزی در منطقه خاصی از مغز همراه شده و یک فعالیت فکری شدید تقریبا تمام مجموعه مغز را روشن می‌سازد. گاز کربونیک که از فضولات اصلی متابولیسم سلولی می باشد، با ایجاد انبسات در عروق مستقیما روی کالیبر آنها تأثیر میگذارد. تنظیم عصبی نیز از طریق یک منطقه که در شریان صبات قرار دارد و جریان خون و مقدار اکسیژن آن را بررسی میکند در این امر مشارکت دارد. البته این دو مکانیزم با یکدیگر نامتقارن نیستند و به هر صورت هنگامی که فعالیت سلولهای عصبی به حال اول برمیگردد انبساط نیز متوقف میشود. در اینجا یادآور میشویم که در مغز مجاری جریان خون مکمل نیز وجود دارد که در صورتی که کاهش جریان خون در بخش مشخصی از مغز به وجود بیاید، فعالیت خود را آغاز می کند. این مجاری مکمل در صورت ایجاد خطر امنیت را تأمین می کند و هنگامی که منطقی دچار ناراحتی میشود، جریان خون را در آن برقرار میسازد. ولی اگر این مکانیسم نارسا باشد آسیب های مغزی غیرقابل جبرانی ایجاد می شود که باعث مرگ بر اثر چیزی که متخصصان به آن عبور از کما می‌گویند می‌شود. در این رابطه، این را نیز باید بگویم که اتفاقات ناشی از عروق مغزی، سومین مورد مرگ و میر پس از سرطان و ناراحتی‌های های قلبی است. بنابراین اندازه‌گیری مقدار جریان خون مغزی در معاینات پزشکی رایج اقدامی سودمند می باشد. چون این اقدامی باعث می شود تا از بسیاری از وقایه مرگاور و همچنین برخی از ناراحتی‌های مغزی که نیروی حرکتی، زبان، حافظه و به طور کلی وضعیت فکری را مبتلا می جلوگیری شود. فعالیت مغزی همچنین توسط افسایش درجه حرارت آن نیز مشخص می شود. به صورتی که پس از پانزده دقیقه کار فکری درجه حرارت مغز یک دهم ده درجه سانتیگراد افسایش می آباد. مثلا حتی اگر یک سگ را به نامش صدا کنیم، درجه حرارت مغز او به صورت محسوسی بالا می رود. که به کمک دستگاه های ترمو الکتریکی بسیار حساس روی مغز یک گربه انجام شده نشان داده است که درجه حرارت مغز این حیوان هنگامی که وی به دنبال غذا بو کشد یا سگی را مشاهده می کند نیز افزایش می در عوض در هنگام خواب، درجه حرارت مغز چند دهم درجه کاهش میابد. میدانیم که تغییرات درجه حرارت یک بافت نشانه تغییرات موضعی جریان خون بوده و میتوان از طریق اندازگیری حرارتی مقدار این جریان خون را در نقاط مختلف مغز تعیین کرد. این روش حرارتی و مکمل تکنیک های ایزوتوپیک است. قطعا اندازگیری خون برای شناختن نیازهای غذایی مغز کافی نیست، و این مسئله باید با تعین پارامترهای بیوشیمیایی که متابولیسم مغز را که هدف غایی تحقیقات مربوط به تغذیه است انجام میدهد، همراه شود. به دنبال آن به موازات اندازه‌گیری جریان خون، خون موجود در شریانها و وریدهای مغزی را تجزیه می کنند تا نوع میتابولیت یعنی ترکیبات ارگانیک دارای وزن مولکولی ضعیف را که توسط مغز مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص سازد. بررسیهای کلینیکی نشان داده است که برخی عناصر نظیر گلوکوز، کلسیوم، فسفر، اسید گلوتامیک و ویتامین های گروه B نقش مهمی را بر کارایی مغز بر عهده دارند. همچنین مشاهده شده که مغز یک مصرف کننده مهم اکسیژن است. حال به نقش یکایی که این عناصر میپردازیم. بخش دوم نقش گلوکوز از مدت ها پیش میدنیم که تغذیه ناقص به ضعف روانی منتهی خواهد شد اگر نسبت گلوکوز موجود در خون بیش از حد کاهش یابد بر اثر مصرف بسیار کم آن یا حضور بیش از حد انسولین که مقدار گلوکز خون را کاهش میدهد شخص به کمای هیپوگلسمیک دچار خواهد شد در این صورت فعالیت الکتریکی مغز کاهش می ولی در عوض مغز و استخان تحریک شده و شخص ممکن است دچار تشنج شود. حالت فرد در این وضعیت شبیه به قطع تنفس می باشد. برخی آزمایش ها که روی حیوانات انجام شده نشان داده اند که هیپوگولیسمی باعث ایجاد امواج مغزی می شود و مشابه است که بر اثر بحران سر به وجود می آید. اما وجود بیش از حد گلوکوز نیز مضر است. افراد مبتلا به دیابت غالبا دارای حافظه ضعیفی بوده، مغزشان کند کار می کند و زود خسته می شود. این گونه افراد ممکن است سرانجام قربانی کمای دیابتیک شوند. این حالت که بر اثر کمبود انسولین ایجاد می‌شود، در واقع شبیه به کومایی است که به دلیل کمبود گلوکوز به وجود می‌آید. زیرا در این حالت نیز سلول‌ها بر اثر عدم حضور انسولین قادر به مصرف این قند نیستند. علاوه بر آن استفاده از چربی‌ها به عنوان مواد جانشین باعث تشکیل مواد ستونی سمی می‌شود که خون را علیرغم مبارزه اصلاح کننده بدن اسیدی می‌سازد در عین حال تحقیقات علمی بسیاری سعی در اثبات این نکته دارند که تلاش مغزی و به طور کلی کار کرده فعالیت سیستم اعصاب فقط به مقدار کمی انرژی نیاز دارد به عنوان مثال یک گرم عصب غورباقی در حال استراحت در هر 24 ساعت دو تا سه میلی گرم گلوکز مصرف می کند که این مقدار در حال فعالیت به 5 میلی گرم می رسد. اما تلاش مغزی منجر به ضعف و تحریک پذیری تارهای عصبی شده و چون تمام قدرت درون ریز و برون ریز به آن وابستگی دارد، موجب کاهش ترشوهات آنها نیز می شود. که در نتیجه ناراحتی های مختلف فیزیولوژیکی را به وجود می آبرد. چون اصلاح کردن وضعیت و استفاده از مواد غذایی برای بدن ضروری است، لذا مغز نیز به صورت غیر مستقیم یک مصرف کننده ی ها به شمار می‌رود. بخش سوم، اهمیت فسفر و کلسیوم در وهله اول متذکر می که کلسیوم و فسفر، از فراوانترین ترین در بدن انسان هستند. در بدن یک انسان 70 کیلوگرمی حدود یک کیلو و 400 گرم کلسیوم وجود دارد که 99 درصد آن به صورت فسفات های مختلف در استخان و جزئی از آن هم در دندان ها می باشد. بقیه این ماده به صورت یونیزه در پلاسما حضور داشته و برای کارکرد سلول هایی که کلسیوم روی آنها تأثیری متضاد با تأثیر یونهای سودیوم و خصوصا یونهای پوتاسیوم اعمال میکند ضروری است از سوی دیگر فسفر نیز در تمام واکنشهای اساسی تخریب و سنتز ها، مواد چربی و عناصر عزتدار هسته هستههای سلولی تولید سلولهای جنسی و سرانجام همراه با کلسیوم در ساختمان اسکلت شرکت دارد خصوصا در رابطه با مسئله مورد بحث ما یعنی حافظه کلسیوم و فسفر نقش مهمی در کار مغز بر عهده دارند. دکتر پل شوشارد در کتاب خود به نام شیمی مغز می نویسد کار فکری همیشه با افزایش دفع اوره و فسفاتها در ادرار همراه است. در جریان آزمایش هایی که به مدت ده سال روی حدود ششصد دانش آموز که سنین آنها بین 18 تا 22 سال بود انجام شد از طریق تجزیه دریافتیم که در اکثر ایشان مقدار دفع آهک و اسید فسفوریک ادراری در هنگام نزدیک شدن به فصل امتحانات با تناسب‌های مهمی افزایش می‌یابد. این تفاوت خصوصاً بین دختران جوان که معمولاً بیشتر حیجان زده و نگران هستند قابل ملاحظه‌تر است. این رانیزمی افزایش که آنان در تحصیلات خود از پسرها دقیق‌تر و شناستر هستند. اما در تعدادی از دانش آموزان پسر که نسبت به دروس خود بی تفاوت هستند، مقدار از دست دادن فسفر و کلسیوم علیرغم نزدیک شدن امتحانات عادی باقی میماند. از سوی دیگر می دانید که نوران ها خصوصاً نسبت به کمبود یونهای کلسیوم حساس هستند. اگر در یک رگ خونی یک اکسالات غلیایی، مانند اکسالات پوتاسیوم را که باعث رسوب کلسیوم به صورت اکسالات غیر محلول می شود تزریخ کنیم، مشاهده خواهیم کرد که نورونهای سیستم اعصاب سمپاتیک، که به اعضای گوارشی، تنفسی، جریان خون و قدرت مترشح فرمان می‌دهد، دچار سستی و بیحالی می می‌شود. در این حالت تحریک اعصاب ریوی مدی که عصب تعدیل‌کننده قلب است، دیگر توقفی در این عضو ایجاد نخواهد کرد. در حالی که این امر در شرایط عادی انجام می‌شود. به همین صورت تحریک اعصاب تسری‌کننده کار قلب نیز بدون تأثیر باقی می‌ماند. و سرانجام عصب زبانی حلقی، عصب منبسط کننده ی دیگر باعث سرخی زبان نخواهد شد. از نظر بالینی، کمبود کلسیوم باعث ایجاد گرفتگی ازولانی، حالت عصبی و حتی تشنج و گاهی بیخوابی خواهد شد. بخش چهار مواد غذایی که از نظر کلسیوم و فسفر غنی هستند. با به مسائلی که ذکر شد، مواد غذایی خصوصاً برای معلمین و به طور کلی کسانی که کارهای فکری دارند، ضرورتا باید محتوی مقدار کافی از کلسیوم و فسفر باشد. بیشک ترکیبات دارویی زیادی نظیر گلیسیرو فسفات آهک وجود دارد که قادر است کلسیوم و فسفر مورد نیاز مغز را به آن برساند. ولی غیر از برخی موارد پاتولوژیک که در رابطه با آنها ممکن است بدن به حجم زیادی از این دو عنصر نیازمند باشد، به طور کلی بهتر است کلسیوم و فسفر مورد نیاز را از طریق مواد غذایی گیاهی و حیوانی، یعنی جایی که با پروتوپلاسم همراه است و به ویان دیگر به حالت زنده مصرف کنید. علاوه بر آن، رابطه مناسب کلسیوم فسفر بایستی الزاما در مواد غذایی رعایت شود. تا از خروج مواد آهکی از بافتها بر اثر مقدار بیش از حد اسید فسفریک و یا افزایش زیاد کلسیم که میتواند با انباشته شدن کلسیم در اعضای مغز نیز باشد جلوگیری شود. رابطه بین این دو در بزرگسالان باید نزدیک به یک باشد. در کودکان تا مرحله آخر رشد این رابطه باید کمی بیش از یک تقریبا یکانیم باشد. این نسبت به این معناست که مصرف کلسیوم در کودک یا یک فرد جوان باید کمی بیش از مصرف فسفر باشد. میدانید که رابطه کلسیوم-فسفر موجود در شیر و پنیر تقریباً مساوی با یک است. البته کلسیوم کمی بیشتر است. بنابراین شیر و پنیر از مواد غذایی مناسب برای کسانی هستند که کارهای فکری زیاد انجام میدهند. علاوه بر آن، سوای کلسیوم، فسفر، سایر عناصر معدنی و ویتامین ها شیر تقریباً با نسبت مساوی دارای سه عنصر اصلی مورد نیاز برای زندگی یعنی پروتئین‌ها یا آلبومین ها، کازئین، و لاکت آلبومین، گلوسیت ها یا غندها، ها، لاکتوز، دکسترین و لیپیت ها یا چربیها ها کره لسیتین می باشد. نسبت این عناصر مختلف بر حسب نوع نژاد حیوان شیرده بسیار متنوع است. و حتی از حیوانی تا حیوانی دیگر با یک نژاد یکسان نیز بر حسب تغذیه و ساعتی از روز که شیر در آن دوشیده شده است تغییر می کند. شیری که ما امروزه مصرف می کنیم معمولا شیر گاو است که از گاوداری های بزرگ جمع‌آوری شده و شیرهایی از نژادهای مختلف با یکدیگر مخلوط می شوند. بنابراین ترکیبات شیر موجود در بازار عملاً حالت ثابتی دارد. همچنین یادآور می شویم که در شیر در کنار ویتامین C یا اسید آسکربیک به مقدار دو تا سه برابر آن اسید دزیدرو آسکربیک وجود دارد که تقریباً ارزش ویتامینی اسید آسکربیک را دارد و معمولاً در تجزیه ها ذکری از آن به میان نمیآید. شیر که دارای پروتوین ها، لیپیدها، ها،, ها، معدنی و ویتامین هاست، از نوع مواد غذایی است که می تواند به تنهایی حیات را حفظ کند، به صورتی که آن را ماده غذایی حفاظت کننده یا ماده غذایی سلامتی بخش نامیده اند. البته این مسئله برای کودکان واقعیت داشته و برای بزرگسالان سالان کاملا صدق نمی کند، در واقع شیر یکی از فقیرترین مواد از لحاظ آهن است که اهمیت چندانی برای نوزادان ندارد زیرا نوزاد مقدار زیادی از این فلز را در دوران زندگی درون رحم در کبد خود ذخیره کرده است در عوض افراد بزرگسال که ذخیرهشان بسیار کمتر بوده نیاز بسیار بیشتری نسبت به کودک دارند در صورتی که اگر منحصرا رژیم شیرخاری را در پیش بگیرند دچار کمبود نمک‌های آهن خواهند شد شیر همچنین از نظر مص و بسیاری از عناصر ضروری دیگر که به مقدار بسیار کمی مورد نیاز بدن است، فقیر است. از سوی دیگر اگر معده کودک در سنین پایین به مقدار فراوان دیاستاز هایی تولید می کند که شیر را حذب می کند، برعکس معده افراد بزرگسال سال تقریبا این مواد را تولید نمی کند. آزمایش های بالینی این گفته ها را مورد تعیید قرار داده اند. که کودکان فقط با مصرف شیر به شکل مطلوبی رشد می کنند در حالی که اگر شیر به مقدار آمیز یا انحصاری توسط بزرگسالان مصرف شود های گوارشی و تغذیه‌ای و عوارضی از مسمومیت مایعات بدن مشاهده می شود که به محض کاهش یا توقف مصرف شیر از بین خواهند رفت مسلما این مسئله به آن معنا نیست که باید شیر را از تغذیه بزرگسالان حذف کرد بلکه منظور این است که باید شیر را با رعایت اعتدال مورد مصرف قرار داد. شیر برای کسانی که کارهای فکری و جسمی انجام می و همچنین برای ورزشکاران ماده غذایی بسیار خوبی به شمار می آید. در عین حال این ماده در رابطه با برخی از بیماری های کبدی که به سختی آن را به علت غلزتش از نظر چربی حضم می کنند، و همچنین کسانی که دارای فشار خون شریانی بوده و باید رژیم شدید بدون کلورور را رعایت کنند ممنوع است. گروه اول می توانند شیر را یا به صورت چربی گرفته و یا شیر بدون چربی پودر شده مصرف کنند و گروه دوم می توانند از شیر بدون کلورور که به صورت پودر است استفاده کنند. شیر بدون چربی پودر شده را می توان به همگان توصیه کرد. زیرا خیلی قابل هست تر از شیر کامل است این شیرها از مواد غذایی از دار با ارزش بوده و جزو بهترین منابع کلسیوم، فسفر و ویتامین های B1 و B2 و C محسوب می شوند برخی افراد میگویند که می توان شیر را مصرف کرد و از مصرف پنیر صرف نظر نمود باید گفت که پنیرها علاوه بر داشتن این مواد اساسی فولور میکروبی مفید و همچنین دیاستازها و موادی برای آماده ساختن گوارش نیز دارند. عوامل تبدیل شیر بسیارند، اما بیشترین مصرف را باسیل‌های لاکتیک و پارالاکتیک دارا هستند. مخمرها، لپتو تریکس ها، کوکوس یا باکتری‌های کروی شکل و غیره نیز می‌توانند به آنها ملحق شده و تشکیل همزیستی موضعی را بدهند. این حالت پنیر ترکیبی را به وجود می آورد که تعم و حالات متنوعی دارد. این موجودات قند ها را تبدیل کرده، به پروتوین ها حمله برده، لپیت ها را هیدرولیزه کرده و عناصر ویتامینی و دیاستازی را که پنیر را زنده نگه داشته و آن را قابل مصرفتر می سازد، آماده می کند. آنها خصوصاً سنتز ریبوفلاوین یا ویتامین B2، اسید پانتوتنیک، پیریدوکسین یا ویتامین بی اسید اسیدفولیک یا ویتامین بینو و گاهی ویتامین بی دوازده را انجام می‌دهند. و تجزیه های انجام شده نشان داده اند که ویتامین H یا بیوتین که آن را در فصل پنجم مطرح خواهیم کرد نیز در پنیر وجود دارد این ویتامین تولید انرژی کرده و به مغز امکان می که سلامتی خود را حفظ کند بر حسب درجه تخمیر، پنیرهای با تخمیر سبک، پنیر تازه، پنیر سفید ماست یا غیره، یا پنیرهای با تخمیر متوسط یا شیرین، خام یا پخته و سرانجام پنیرهای با تخمیر شدید به وجود می آیند. در میان پنیرهایی که از دسته سفت هستند، می توان پنیر هلندی را توصیه کرد. به هر حال، تنوع آنها هرچه باشد، پنیر یک ماده غذایی درجه اول است. 100 گرم پنیر هلندی یا مشابه آن از نظر کالری و نیرو تقریبا با 300 گرم گوشت گوساله یا 350 گرم ماهی برابر است. در این مقدار پنیر همان اندازه کلسیم موجود است که در دو و نیم کیلو کلم یا سه کیلو پرتقال وجود دارد. از سوی دیگر، این ماده یک غذای از پیش آماده هزم و گاهی اوقات تا مرحله اسیدهای آمینه هزم شده است و این اسیدها موادی هستند که مواد زنده از آنها تشکیل می شود. پنیر یک مخلوط و مجموعه واقعی از ویتامین هاست که در آن از ویتامین های معمول تا انواع کمیاب آن به چشم میخورد. و سرانجام، چون این ماده سرشار از کلسیوم و همچنین فسفر بوده، و مقدار کلسیوم فسفر در آن بالاست، به همین دلیل همان گونه که قبلا نیز گفتیم ماده بسیار خوبی برای اشخاصی است که کارهای فکری انجام میدهند. این را نیز می که برای نوجوانان، جوانان بیماران در دوران نقاحت و زنان باردار یا شیرده ماده غذایی بسیار عالی می باشد. ممنوعیت مصرف پنیر تقریباً موارد کمی را شامل می شود. افرادی که دارای ناراحتی‌های های کلیوی یا رودهی هستند، بیمارانی که به ورم کلون که بخشی از روده بزرگ است و از روده کور آغاز شده و به رکتوم منتحی می شود مبتلا هستند، باید از مصرف پنیرهای چرب و قوی خودداری کنند. افراد مبتلا به بیماری های قلبی همراه با اودم، اشخاص مبتلا به آلبومینوری یا چاقی مفرت، فشار خون بالا، و کسانی که مصرف نمک برایشان ممنوع شده میتوانند پنیر را به مقادیر بسیار کمی مصرف کنند همین وضعیت در مورد کسانی که مبتلا به اورمی بوده و باید مواد غذایی ازتدار خود را کاهش دهند نیز می صدق میکند